the p ال به تمام دوستایی عزیزم شنوند های کمپانی بیس به اسپاننسری ب باز اونیدوارم که حال احتون خوب باشه رضا پیشرو هستم در این مصاحبه در خدمت شد. شو گونده و میدونی هدفم چه جوری وای تو چشم تا سال زیده منتظر دستور حکمی کسی نمیتونه جای منو اصلا این و جنگل منو رفتن دوستان میخواستم باتون در مورد دیسک دو ریل صحبت بکنم همونطور که میدونید هر چه داشتم و در مورد دیسک ریل گذاشتم یعنی از اتفاقاتی که پیش رو گذاشتم هر چقدر بخوام خاطره تعریف بکنم الان فقط وقت شما رو میگیره به خاطر همین میرم سر اصل مطلب اونم اینه که دیسک دو ریل برای من یعنی ادامه زندگی هنریم یعنی هران چه درک میکنم و درک خواهم کرد به خاطر همین خیلی دوست دارم که با انگیزه برم سراغش و وسایلم بیاد برسه بهم به یه سری وسایل سفارش دادم که بتونم آپدیت بکنم سیستم صدابرداری رو، سیستم میکس و سیستم سازی رو بتونم یه سری چیزای جدید یاد بگیرم که بتونم تی دیسک دوی ریل اراعش بکنم همینطور در مورد همکاری ها باید یه سری سرچای انجام بدم یه سری موزیکایی رو گوش بکنم ببینم که دقیقاً میخوام به چه مسیری ببرم و چه افرادی بهترن که با من همکاری بکنن توی این مسیر و توی این جانبی که میخوام کار بکنم ریسک دورو و زمان میخوام و حمایت میخوام ما به اینش ممکنه که تک ترک هایی بدم همینطور که پارسارم هم صحبت کرده بودم یه سری ترک داره از من میاد بیرون به خاطر انبوه پروژه که قبل از اومدن دیسک یک من منتظر گذاشته بودم که بیان و اونا مربوط به گذاشتن ممکنه که هنوز پخش بشن اما در حال حاضر دارم یه کاری مینویسم که ربطی به آلبوم دیسک دو ریل نداره از کمپانی ریل میاد بیرون و یه هنگی که در مورد شرایط حال حاضره نگاه من به جامعه و زندگیمه هم. همیشه بحشی و زخمی نزا دیش. وقتی پا به پامی پای گاندی را میری بی مالی خنده هاد نمیزنم به چاری چاپین ناسیبی وقتی کار میدیم باعث تحتیلات میشیم انگار دادیم به یک کرسنه ی افریقایی ساندیویچ را میریم تو طول و عرض من بکرد روی خط در سر با سود کم مرفت تن به تن روی بازی روی سنگ سخت سوژه خنده اما در مورد مسائل مختلف کاریمون بخوایم با هم دیگه اینجا صحبت بکنیم یه بخش بخش میکس و مستر و بخش انتقادی بوده که همیشه دوستان انتقاد کردن سر اینکه که من میکس و مسترم و به افراد مختلف دادم دوست داشتم همیشه محک بزنم و همیشه دوست دارم که باز محک بزنم افراد مختلف و ببینم که چه شکلی میشه ولی مطمئن باشین یه ورژن درست از هر کاری که شما گوش میکنید و نقدش میکنید و خودم اون نقد ها رو بهش واقف هستم اصلاح شده ورژن های اصلاح شده از موزیک های من به گوش شما خواهد خورد من برای اینا تلاش خواهم کرد و موزیک ها رو دوباره با کیفیتی که شما دوست می بشنوید حتما اگر میکسی به دل شما نشست من این کارو دوباره انجام میدم و با افراد مختلف فرجن های مختلف فکالو می کسی اوواستش به تو نیست دختر مادر که مرد پدر سمت سمتهروین مجبوری نصف شب و پا بدی به پلیس ها بری تو ماشیناب و بزن یه اووااسش به تو نیست پسر خش شیمیایی پدر دافاده کردن تو رو میست خاصی دیدم نوشته پرونده کلت خفگی داد با گیت بشان به صبح کسیاوواستش به تو نیست م میگری دنباله لغمه حلال تو شرکت مواد غذایی فامیلتون جیبت خالی پول نیست و فیم تو راسی بموند اگه اختلا شرکت شرکت رو, رو بکنی میکنن احی گور دن کنارت گور میکنه باقی روز خوششاری هستیم که بچه تون. تو خونه خوابیده خوب کسی عباسش به تو نیست مرد تو که خاطره هاتون میبری پیش مرد رویاه ها گذاشتی برای بچه ها تو نمه ها تو بستی اتنامه زیر سر کسی عباسش به تو نیست خدا نمیدونن مال و طلای دنیا رو سپردید از شیطان بسیار چی بدتر میشن ثبت مدتر میشن نمیدونن هم از کجا کسی عباسش به ما نیست کنان از شد وقتی من قنگی در مورد فرهنگسازی فضای مجازی و فحاشی در کامنت ها باید بگم که خب ما یه جا با تربیت اجتماع رو به رو هستیم یه جا با تربیت خانواده که ما در بخش تربیت اجتماع محصوب میشیم یعنی کلا اثرگذاری ما هم در بخش تربیت اجتماعی محصوب میشه به نظر من بحث تربیت اجتماعی و که وسط میکشیم به خاطر انقلابی که اینستاگرام کرده در فضای مجازی از زمان فیسبوک و همینطور تلگرام یه مقدار داره جامعه رو نزدیک میکنه به فضای انقلاب سکس و به نظر من این ماجرا خیلی از این بدتر میتونه بشه. به خاطر اینکه نمیتونن خیلی از آسیب هارو. درمان میکنن در خودشون و سعی میکنن یه جایی یه جوری بیانش بکنند و چه جایی بهتر از نقاب فضای مجازی هشت تا رفت روزای خوبم و نشمردم درد خوردم و زخش شستم. سر خوردم و افسرددم همه یه روزای اوج من تو وطلم حست بود من این روزا نمیتونم خودم و گول بزنم با چند خ بود وصبی بودن روهت میکنی وقتی میخوایم با هم م جلو کل شروع میکنین پش دام و وقت توه نافز بافی دوست کاری منو دست بازسی می خندی وقتی و امضا دیدم به دوست جون که ش بندارین برا یه خطکش داریم ای منو آنالیز کن بعد تو میره بالا پیش و سط کومله با ما می جون بودور پیش مامانی تو. چرا پیشرو کارای نظیر دیوونه دو کلافگی فریبنده که مورد استقبال اکثر شنونده هیپ قرار گرفت تالید نمی کند؟ من خیلی دوست دارم که پیشرو وقتی یک اتفاقی در زندگیش حادث میشه اون موقع اون اتفاق رو به شعر تبدیل بکنه و اون پیشرو رو بسازه سازه دوست ندارم از روی دست خودم تقلب بکنم که توی بازار مثلا بالا بمونم اصلا بالا بودن به این چیزا نمیبینم خیلی دوست دارم که توی کارم حوادثی که برام اتفاق میافته درکی که از جهان دارم به شعر تبدیل بشه براش افی در نظر گرفته بشه و سعی نمیکنم که خودمو تکرار بکنم. به نظر من پیشرو امروز من به این نتیجه رسیدم که پیشرو خیلی موقع جلوتر از زمان میره و مسائلی و وارد زندگی ذهنی و شخصی من میکنه و من این خیلی برام چالش بزرگی توی زندگی که با پیشرو طرف هستم خود من اولین نفری هستم که پیشرو بزرگترین علامت سال در زندگیمه. پس اون چافگی در من فوران خواهد کرد اون دیوونگی در من فوران خواهد کرد و باز من این رو روبلا که بهترش شما تقدیم خواهم کرد من یه دونه اصلحه میخوام باید با دنیا تصویر کنم باید برگردم به اصلی خودم باید بکشم مارای زنگیه دارم و بعدم میاد تصویر خودم از مصیره شدن از دستگیره شدن از تصویر شدن از بچیره شدن از سنگیره شدن از قصیر شدن دیگه نمیخوام نادون باشم کیو عطو بورم پوشن کیو دوونیا آروم دارن کیو مثل من دوون دارن کیو مثل من آشوب دارن کودو محمق و 4 چوب دارن کیا مثل من خواب دوست دارن کیو مثل من کوبوس دارن کیو دل های رنگی دارن اما واسه بقیه مثل تاحسی گن کیو دل های سنگی دارن کیو با خدا مونده رو نسی دارن کیو حالت منگی دارن کودو محمق دل تنگی مثل من میمارم توی درد دیوار مثل مرد میمرا و اما اینکه چرا همکاری ها به ندرت صورت میگیره بین بچه ها در رپ فارسی مخصوصا در کلاس A به خاطر اینی که ببینید یک شکاف بزرگی از لحاظ عقایدی وجود داره. بعضی از بچهها ها ژان دی که مثلا فلان کس داره کار میکنه و برای خودش کلی طرفدار هم داره قبول ندارن. و این شکاف ها باید حل بشه و یا پذیرفته بشه یا اینکه ما باش کنار بیایم که نه مثلا فلان کس اصلا قبول نداره فلان کارو پس هیچ وقت با فلان آدم فیت نمیده اینو ما باید تا آخرش بپذیریم یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که شکاف خیلی بزرگی از لحاظ جغرافیایی وجود داره بچه‌ها کناره هم نیستن همین باعث میشه که کمتر به این فکر بیفتن وقتی دو نفر کنار هم باشن بهتر توی استودیو جواب میگیرن هر چقدر هم کارایی از راه دور ای بخواد انجام بشه در سرای خیلی بزرگی داره مثلا توی موزیک آدم همش وسواس داره کلیک به کلیشه‌و می‌خواد بررسی بکنه و براش یه حلی پیدا بکنه پس یه مسئله دیگه هم که وجود داره این مسئله حمایت ها و مسائل مالیه این که تعیق کنندگان نیستن که بخوان سرمایه ای بکنن در مورد موزیک هایی که بخواد ارائه بشه از طریق همکاری بین دوتا کمپانی تأییدکننده ها از خود شما ها هستین شما مردمین دوستانی هستن که حالا یه مقدار وضع مالیشون خوبتره کاروباری دارن شرکتی دارن دارن گذاری میکنن روی رب. اینا خیلی مهمه ما تجهیزات بهتر داشته باشیم میتونیم خیلی محصولات بهتر و باکیفیت‌تر و انگیزه بیشتر برای تولید محصول رو داشته باشیم اینو فراموش نکنید درست از صف شروع کردن یه زرستی سیواس یه سال دو سال چهار سال پنج سال ده سال دیگه الان دیگه بالای 15 سال همه دارن تو این کار فعالیت میکنن و انگیزه میخوان تغییر کننده میخوان پیشنهادات میخوان زمین میخوان اینا هم هست که متاسفانه به ندرت پیش میاد. آها در مورد راه چارش بعد بیایم که راه چاره داره، ما به فکر راه چارهش هستیم. و اما اینکه دوستی بچه ها در رپ فارسی حالا به خاطر همکاری یا به خاطر هر حرکتی که در راه پیش در رپ فارسیه به نظر من در پشت صحنه اتفاق بیفته و جلو بره خیلی بهتره. چون کمتر درگیر حاشیه میشه متاسفانه شنوندها خیلی زیاد دوست دارن که آرتست هاشون اووارد ها بعضی وقتا میری تو لش میذاری تو ضبط به سیری تو پر دادشم میری تو جمع به میگن اینجا لاس به گاس نیست نمیتونی مثل پاک شاخ به شاخشی آه. اما لباسم هم و بلند حتی وقتی که دارم می خونم رپ روم گاهی وقت تا کسی بپام نی هیپ پاپ پا ازم میگیره کام به کام بیت بر الان زری سفت کامل در حال ارتکاب جون دستی شدی با سنو سالت فکر میکننی چی میکنه ش و این اتفاقات که زه دولانه سوبر دورام سوژه فکر می‌کنی گرجی ما تو به تو واسه من یه مسخرم است عقب رفتن هر طرفه چه شرافت به تک تک تون از ما کلی فاصله داری کوس از فراری اما در مورد فوش دادن اینکه آیا فوش دادن تاثیر منفی میتونه داشته باشه و یا اینکه نه نمیتونه داشته باشه نظر من اینه که چون من در اخشار مختلف بزرگ شدم زندگی کردم با افکار مختلف سر و کله زدم و توشون خیلی زیاد بودم برای من عیبی نداره جنبشو دارم و در زندگیم باعث نمیشه که به خاطر اینکه این کار میکنم بخوام برم انده یه نفر رو بزنم یا یعنی اینکه تو زندگی اجتماعی کسی تأثیر آنچنانی بذارم نه بسته به جنبه افراد داره و اون آدمایی که جنبهشو ندارن به نظر من براشون بده پس در نهایت چیز بدیه ولی من نمیتونم به خاطر بار جنبهی که خودم دارم یه کاریو نکنم چون دیگران ارزششو ندارن چردن مردو فیک کنن ساده است دستم این دوسام فکر نفتت کنن کو با نمسر مارم اگه داشته باشی کارم حالا حالا واژ بازی دارم شام رو شام میکنم مثل شاعر رو و به زمین و زمون دید کائناتی دارم همه فکر میکنن یه مازراتی دارم بعضی وقت پرش بعضی وقت امرکای بازم زندگی شخصی میاره با چه کارهایی میتوان کسانی که شنونده این سب نیستن رو جذب کرد و آیا از نظر شما موسیقی رپ جای پاپ را بین جوانان گرفته یا خیر اما در مورد جذب مخاطب خدمتتون ارز کنم اول از همه این که من خیلی معتقدم که آرتیست باید نبز زندگیشو شعر بکنه و این خیلی شبیه پرفورمنس آرت و رب اینجوری خیلی شبیه خودشه و اگر اینو رعایت بکنه میتونه در حوزه‌ای که داره فعالیت میکنه بیشتر بدرخشه و مردم جذب آرتش بشن و در کل که ما هممون باید به همدیگه کمک بکنیم اگه همه یک خانواده باشیم و به هم کمک بکنیم حالا در جانهای مختلف ما میتونیم خیلی مخاطبایی بیشتری جذب کنیم مخصوصا اگه سازی رو درستر انجام بدیم و به سمت جلو ببریمشیم این سازی رو صرفا این نباشه که یه اثر یه آلبوم فرهنسازی بشه و دیگه فراموش بشه بچه ها باید همکاری بکنن. اما در مورد مقایسه با سبک پاپ به نظر من که اصلا هیچ جای مقایسه وجود نره چون بچه های ما جوری از صف شروع کردن و جوری هنر دارند و سبکشون اونقدری قدرتمنده مثل فرق فلز آهن با آلمینیوم میمونه خب رب مثل آهنه مثل فلز سخته ولی پاپ مثل فلز نرم میمونه حتی اگر رپ رو بتونیم نرم نرم اجراش بکنیم یک حالتهای یک رده های از سختی آهن توی اون آلمینیون پیدا میکنیم پس در نهایت من ازتون میخوام که خیلی پشوانه همدیگه باشید بتونید توی این آثاری که تولید میکنید نظرات همدیگه رو بشنوید و تحصیب بکنید و اون وقتی که ما بیشتر میتونیم مخاطب جذب بکنیم و اون وقتی که بقیه ارزش زیاد مهم ما به چشم آه. میاد کاری جز نشه ازم بر نمیاد یه مرد بیخوابم که موخش تعطیله و شنبه میخواد لب سیگار یه گوشه رو تخت بیحال تو اوج سلامتی <متصفح> جسمانی داره نقش بیمار آه حتی تو بارونم عشقای من معلومه بدنم گرمه اما سرماهی من از توه تو این روزا با بغض فریاد من مسدوده کارم شده از بیرون تنها برم مسخونه بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم اونا که منو نفهمیدن جلوم دیف شدن یا برعکس گفتم تو شیطانی خواستن منو بسوزنن روحمو تو زندانی بپوسونن دست شدم تو اون تاریکی شب برش داشتم می شددم خواستم خودم بکشم و یه گفت راه ددامه داره تا امیدی اما در مورد درگاه اینترنتی که بچه ها درست میکنن باید حمایت بشه باید دیده بشه چه درگاه های داخل که بچه ها با هزار تا استرس پیگیری میکن چه درگاههایی که خارج از ایران وجود داره اه... که میتونن حمایت بکنند باید دیده بشه مثل آیتیون CDدیبی مثل اسپاتیفای. خواهشان بی توجه از کنار اینا رد نشین رب یه هنر خودجوشه و خیلی فرق داره با ژانر چیپ پاپ توی ایران که درست سختی های اونها هم گذروندن از سرشون اما بچه های ما واقعا سالهای سالی که داره بهشون ظلم میشه و باید دیده بشن به خاطر اینکه از هیچ هیچه هیچ بدون هیچ رسانه و هیچ بازاری به اینجا رسیدن با توجه به این که این همه مافیاهایی که توی پاپ بودن اذیتشون کردن تأثیرهای منفی گذاشتن روی رپ فارسی که نمونش همین ماجره خالتوره که توی سال بعدی بهش جوابایی خواهم داد اما در نهایت میخوام بهتون بگم که باید دیده بشه خودمون باید هوای هم دیگر داشته باشیم. این درگاه که بچه ها را میدازن که ازش کسب درآمد بعد بکنن که آثار بعدی رو با کیفیتی تولید بکنن یه سافت‌ور یا هاردور اضافه بکنن بتونن براش هزینه بکنن این شکلی نیست که همین شکلی فقط یا رو بره پشت میکروفون یا رو بعد یک چیزی رو مصرف بکنه یه سوختی رو تو زندگیش استفاده بکنه یه تجربه‌ای رو به دست بیاره که بتونه اونو شعر بکنه یا اینکه اصلا یه تجربه‌ای داشته باشه توی دنیای داریم زندگی می‌کنیم که پر از بده بستونه بعد پول در بیاد و باید اون هنرش وصرفا حمایت کنیم این که از چه قشری میاد اون اصلا بحثش شدهست. به نظر من باید هنرش رو حمایت بکنیم و کمکش بکنیم که حتی اگر مولتی میلیار داره بیشتر در بیاره که بتونه ارزابش از اون هنری که داره اجرا میکنه. آنون زمور رپره قدیمی زندگی است. شب نگو میکنه به خوشگلای تو پای با سیدی من قدیمیش کنستایه آتشیناره تو پای یه پنتیات که تو راست. آنون با فاداره با آدیداس سرخات، هت‌فونها کجی، پرفیویه فدیات. آنون زم به جانی وای، لای بازی لای ماشینای همه. از شب بالا یا که کار بالا از جومال یا چلو به با ما دست نظر شما راجب افرادی که به اسم رب فعالیت میکنن در ژانرهای های و یا آهنگ های یا موزیک هایی که به اعتقادات مردم توهین می چیست؟ و اما اون کسایی که به اسم رب فعالیت میکنن حالا دیسلاف میدن بیرون یا اینکه ترکهای ترک های سامر میدن بیرون این خیلی ژانرش مشخصه و زیاد با ما تداخل نمیکنه چون قدیما ما خیلی سعی کردیم که این جریان رو بیرون بکنیم و مبارزه بچه ها آنچنان آشکار بوده که فکر کنم مخاطبینه رپ فارسی به این نتیجه رسیدن و فهمیدن که این ژانر سان ژانر خالتوره و یا ژانر مردمیه که صرفاً به خاطر تکون دادن و فاز گرفتن طراحی شده نه فقط اینکه بخوایم در مورد موسیقی صحبت بکنیم در مورد اون فرق بزرگ بین افکارش داریم صحبت میکنیم این که هیپ هاپ رپ چیزی برای گفتن داره نمایشی که از هیپ و رب شما در هر ژانر هنری میبینید چه موسیقی چه پرداختن به موسیقی چه شاخه های هیپ هاپ همش از دل فرهنگی میاد که حرفی برای گفتن داره چه توی ایران چه هر جای دنیا چهار جای دنیا پیتفول هم میره با مثلا سیل سرستالون عکس میگیره طرفدارای سیل سرستالون میگن مگه تو راکی بالب نیستی چرا با پیتفول داری عکس میگیری هر مردم باید خودشون تشخیص بدن. امروز یه چیزی به مزاج خیلی خوش بیاد فردا خوش نیاد پس چون مردم متغیرن مردم باید گشاشونو بگیرن که هر چیزی رو نشنون ولی نه بگرنه که تو این دنیا پر از اتفاقات و پر از حرفا و مسائلی که ممکنه بهشون بر بخوره عشقش کار شب و روز بی خواب دوستاره چالش کنن تو خبر سونه هیپ ها بیت باکس چیکی چیکی بام بام بام بام بیت باکس چیکی چیکی بام بام در مورد کسانی هم که مستقیم دست می روی سری از اعتقادات مردم که اونا رو عصبی بکنه یا جری بکنه اون خودش قلق داره فهمیدن این خودش یک علمی میخواد و به نظر من آدم باید مریض باشه که یه چیزی اون بکنه که بخواد یه نفر رو دیوونه بکنه شاید مردم ما یه سری از آدمها به شدت حساس باشن نسبت به بعضی از کلمات به خاطر همین مایی که داریم یک بحثی و یک روندی یا جلو میبریم باید روانشناسی بدونیم باید بدونیم چه جوری تفهیم بکنیم به طرف مقابلمون و یه این چیزها در جامعه درک بشه خیلی همه همون میتونیم کنارم بهتر زندگی کنیم و آیا این موزیک ها باعث شده تا رب به چه بدی پیش افراد بالای سی سال داشته باشه اما در مورد افراد بالای سی سال البته این, این مثال هایی که میخوام بزنم خدمتون بیشتر در مورد افرادی که کلن با موزیک آشنایی ندارن و یه دفعه میخوان ساعتی از موسیقی رو برن دنبالش اینکه بخوان یه دفعه باش روبرو بشن که باید مقتعی باهاش روبرو میشدن اینا هم به نظر من کلس داره و از یک دو سه چار پنج همجوری به ترتیب بتونی وارد کلسه یکی هاپ بشی و به نظر من تو گوش شنوانده هم همین شکلیه و افرادی که بالای سی سالن مثل میمونه که یه رفه به جای مسابقه دو بخوای بهشون پارکور یاد بدی یعنی که پارکور رو بخوای بهشون نشون بدی حیجان خب داره ولی متوجهش نمیشن هنریه که باید نوع نگرش به این هنر هم مورد تحقیق و مطالعه قرار بگیره بعد بهش نگاه بشه اگه بخواد سطحی بهش نگاه بشه ممکنه خیلی ارتباط نگیرن پس ما برای جذب مخاطبم اینجا احتیاج به یک مسئله خیلی مهم داریم و اون اینه که هیپ هاپ رو رپ رو به عنوان یک رشته باید بشناسیم نه صرفا به عنوان یک سبک موسیقی اینطوری اگه بخوایم بهش فکر بکنیم به نتایج بهتری می رسیم و میتونیم بزرگترها رو بهتر توجح بکنیم که باچه سیستم پیچیده ای رو به رو هستن ما تو هم دنیا رو ته چند رو دیگه دنبالت امشب دل من گرفته رو خم رو درخت مثل زندگی مردم بین و دست و پارو می تلاش میکنم برسیم به مرگ و نابودی بمولیم سر جام میخ همه نابودیم بدون مادر نمیخونم بچه شیر، بدون پدر غمگینیم گیریم تو شب بارو میم من آشه آرامش اسمتم بارا اسمت قسم که همه خوابیدیم بچه هامون مردن قبرمالی نیست اما هم همون تو زم سونه بعد پایزی و ما در مورد اون قسمتی که حرفای خودم رو را میتونم راحت بزنم باید بگم که ما الان در زمانی هستیم که داریم قرن رو عوض میکنیم و متفاوت بودنش اینجای قضیه است که افراری که در قرن جدید خواهند زیست به ما به چشم چی نگاه خواهند کرد و این خیلی واسه ایم مهم موضوعش در مورد جهانم هست این که همونقدر که ده های ما با هم دیگه فاصله داشت فاصله عقایدی فاصله زیستی همینطور قرنهای ما با هم فاصله بسیار نجومی افکاری خواهند داشت قرنی که از ما به جامون قرنی پر از جنگ و خونریزی و قتل و قارت و مریضی و سختی و بدبختی برای بشر بوده در هزارهای اخیر قرنی بسیار تلخ و من خودم خیلی ناراحتم که در این طوفان بزرگ همراه این قرن هستم اما رسالت الهی هر کسی در هر تاریکی و هر روشنایی دلیل خاص خودشو داره به نظر من ما با همدیگه باید متحد باشیم در افکار و در قلب که بتونیم قرن جدید و محکمتر بسازیم حالا که میتونیم توش نقشی داشته باشیم حالا که میتونیم نقشی ایفا بکنیم در ساختن قرن جدید بهتره با آگاهی به این قرن بریم که اتفاقاتی و حادث بکنیم که به ما افتخار بکنن و ما به شدت داریم تجربه هیپ هاپ و شکلگیری هاپ توی امریکا رو توی ایران میکنیم و از مخالفت‌ها از اون تنش هایی که در اجتماع وجود داره و وجود داشته و اون مسائلی که برای بچه‌هایی که توی رپ فارسی بودن اتفاق افتاده تا امروز مم ام جمله خود من و اینا همش از این قضیه صحبت میکنه که ما داریم روی موج هیپ هاپ حرکت می‌کنیم موج هیپ هاپ در هر جایی که باشه این اتفاقات رو حادث میکنه اعتراضات ها زندانی شدنها و از اون طرف رسیدن و به آرزوها رسیدن و این خیلی مهمه این یکی از اهداف مهم پاپه اینکه تو به آرزوها برسی اینکه تو از هیچ خودتو بسازی کامل کنی چون حق ماست شون مایی جنجو هستیم ما ای رپر هستیم و اینو با خودمون هم میکنیم همیشه در زمانهای مختلف می بینم فیلمای به دستم میرسه که شما می تین میرین هنوز دایره خیلی جوعبه ی توی تهران وجود داره توی شهرای دیگه وجود داره این منو خیلی خوشحال میکنه به خاطر اینکه خودم از اینجا شروع کردم و این فضای کی در ودن نوع خودش حالا با توجه به تمامی کم و کاست که توش هست درک کردم دریافت کردم از نزدیک احساسش کردم خودم چندبار می میتینگ برگزار کردم و حس میکنم که خیلی زیباست که شما دورم جمع میشین و سای می کنید. عقایدتونو رو با هم میگین در موردش حرف میزنید هم اینا زنده نیگرش میداره جدا از اینکه بچهها فعالیت کنن آلبوم بدن همکاری بکنن اینکه شما باید توی خیابون گرفیتی بکنید کارایی که دوست دارید دفعه فرهنگ هاپ مربوطه رو انجام بدید و بدون هیچ محدودیتی سعی بکنید که اون چیزی که با قلبتون همسوه رو اجرا بکنید و میبینم که یه سری سمینارها داره برگزار میشه حمایت از تلنت ها خیلی خوشحالم به خاطرش و پیگیریش هم میکنم و از دوستانی که تلنت هستند و استعداد دارند و دوستان دیده بشن، به جای ایمیل هایی که دقیقا هیچ موضوع مشخصی رو دنبال نمی کنه رو آماده بکنید آلبوماتون و آلبوماتونی عکسی آلبومات که انداختیم پیرامونش داکیومنتری که تعیی کردید هر چیزی که است به صورت پکیجی برای ما بفرستید بدونیم که شما دقیقا چی کار کردید و من آدستش رو توی سایتم حتما میذارم آدرس دسترسی شما رو توی این استاگرام هم اعلام میکنم و در آینده بسیار نزدیک در مورد این حمایت ها صحبت خواهم کرد لایف خواهم گذاشت و توی چنل تلگرام هم, هم وایس خواهم گذاشت و شما رو آگاه میکنم که چه شکلی میتونین از طریق سایت اقدام بکنید آثارتون رو بفرستید و واقعا یه ارزش حمایت داشته باشه من سمیمانه حمایت میکنم امروز یه روز عالیه ماشینت تو از پارکینگ قصد سیای بیرون بهدیدید این نسمش ها وقتییه کنار مردم رسمیشی دیگه بوی زش میاد بعد تو فرض شی دیگه نباید زنی لب 3 گ عکسثر تا تو رو بدن ربه رو سر دیدن تو تو محل جنگه اما دستت تو دست پرنسس ابتتا میشه این هفته برنده این پیشهای ن و حفظه. همونی که گرفته همه رو برخش تو حیات خونه من چمن و بربه. تو آفا من و اینکه چرا یه سری از کارها کنسل شد توی سالهای اخیر این به خاطر این بوده که حالا بعضی از سلنت تا که اخلاق نداشتند یا اینکه بیادبی کردن و هر ترتیب خودشون خودشون رو از سیستم کاری ما من براشون آرزو آرزوی معفقیت میکنم الان اصلا در شرایطی نیستم که بتونم اون ساختارها رو دوباره کامل کنم یه چیزی میشه از راه دور دوباره من مجبورم بیام اینجا از شما اسخوایی کنم به خاطر اینکه بالا سر کار نیستم پس در حال حاضر ازتون میخوام مخصوصا در مورد دیسک دو ریل به من فرصت بدین که ذهنمو جمع بکنم بتونم الهامات درونیمو با خودم شیر بکنم و به نتیجه برسونمش و ملودی بسازم بیت تعبیر بگیرم از talent های مختلف استفاده بکنم و بتونیم یه آلبوم خیلی خوب خدمت شما ارائه بدیم تیم ریل داره همچنان کمک میکنه و حمایت میکنه از تمام مسائل حال بچه ها از جای مختلف هم دیگه وصل هم. ولی یک جریانی و جلو میبرند و احتیاج به پیگیری و حمایت شما هست هر چقدر حمایت شما زیادتر باشه این شکلی که ما انگار یک تقلی کننده خیلی خوب داریم و میتونیم توی کارامون بهتر بریم جلو همینطور که شما هم بارها کمک کردین سر کلیپ ها، سر لوکیشن سر جایی که ما احتیاج داشتیم وسایلی که احتیاج داشتیم همیشه تا یه زبطم که شده بچه ها آوردن سر صحنه یکی موتور برق آورده یکی دستگاه دی‌جی آورده یکی نمی‌دونم اسپری تکی کرده هر کسی هر چی تونسته برای کارا جور کرده گذاشته در حدی که در پروداکت سینما اگه بخوایم بریم همینا رو مقایسه بکنیم می‌بینیم که اینقدر بچه‌های ما متحدن که میتونن پروداکت آنچنانی از لحاظ حزینهی و با همبستگی یه جوری ارزون درش بیارن که خودشان متوجه نشن چقدر این از لحاظ حزینهی به نفعشون شده من یه سری همکاریایی داشتم که بدون حضور خودم انجام شده و مثلا با کلمو ضبط کردم بعد بچه ها میکس کردن این به خاطر شرایطی که الان درش قرار دارم و دسترسی ندارم به امکاناتم و به خاطر این شرایط که قطعا در آینده نزدیک بیشتر در موردش برای شما صحبت خواهم کرد نتونستم حضور داشته باشم و حضورا بالا سر میکس مستر باشم خودم دوست داشتم حالا هوای کارا یه جوریه باشه اونجوری که بچه‌ها دوست دارن اون نفیت هایی باشه که بچه‌ها دوست دارن به هر مسائل متفاوت میشه و اینا یه مقدار مسائل درونی ماهاس چیزایی که بهش اشاره کردم توی مباحثی که عرض کردم خدمتتون بالاخره تضادهایی وجود داره که بعضی وقتا مسیرها رو متفاوت میکنه و رپ فارسی خیلی احتیاج داره به این که شما حمایتش بکنید شما تحلیلش بکنید و اینو مطمئن باشین که من خودم به شخص تأثیر میگیرم از شما و میدونم آرتیست از شما تأثیر میگیرند همینطور که شما تأثیر میگیرید بعد خدمتون ارز کنم در مورد محصولات ریل هم خیلی ها کرده بودن که محصولات ریل چی شد و چرا متوقف شد این یه قسمت رو میتونم شفاف راجبش را الان صحبت بکنم ببینید بچه ما ترها رو از یه سی گرفتیم و با امید خدا که نمایندگی های ما به زودی سیراج بالای از اینا رو برای فروش آماده میکنن که ما یک گالری از عکس های محصولاتمون حالا هرچی که هست توی سایت قرار میدیم که شما دوستان عزیز بتونید مطالبه شید و خریداری کنید در آخر هم تشکر میکنم از سایت رفارسی فارسی به خاطر پخش انستاری برنامه آشنا شو. خیلی خوشحالم که اینجور برنامه ها وجود داره و ما در خدمتون هستیم حال من در آینده با کارهای بسیار درخشان و کوالتی بسیار بهتر برمیگردم گردم و دیسک دو هم خدمتون ارائه خواهم داد حالا جدا از دیسک دو کلن ریل شده کمپانی من بارها گفتم اینجا باز میگم از کمپانی ریل سوپرایز بسیار در راهه قربون شما برم سال خوبی داشته باشید بیس.